بسم الله الرحمن الرحیم درس دوم دروس البلاغ علم معانی هست پس بعد از این که مقدمه ای ذکر کرد ابتدا علم معانی رو میاره معانی جمع هست جمع معنا هست جمع مکسر هست خب موضوع علم معانی الفاظ عربی است از جهت هماهنگ بودنش یا سازگاریش، مطابقت داشتنش با مقتضای حال مخاطب میگوین وازع علم معانی عبدالقاهر ابن عبدالرحمن جرجانی است نویسنده اسرار البلاغه خب میاد خودش تعریف ارائه میده هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتز الحالة. المعني المسك شنخته مش حالات لفظ عربي كبعان مطابقة داش تباشة با مقتزاي حال. که مطابقت داشته باشه به با وسیله آن به مقتضای حال با تعجب این تعریف فتختلف و صور و کلام لاختلاف الاحوال پس های کلام با تعجب اختلاف حالات فرق داره چون موقعی که مقتضای حال در نظر گرفته میشه پس حالت های کلام با رو به مختلف بودن حالات هم چی میکنه؟ فرق میکنه اگر خشک باشه این اطاف بزیری باشه فرق نکنه اون موقع نمیتونه نمی مطابقه با مقتضای حال باشه مطابقه شدیم مولاوی؟ مثال ذالک قول تعالی مثالشین قول الله متعالی و انا لا ندري اشر اريد به من في الأرض، ام اراد بهم ربهم رشدا وما نميدانيم. آيا شرری خواسته شده است برای کسانی که در زمینند یا پروردگار نسبت به آنان رشدی خواسته است خب اینجا شما دقت کنید دارين آيات شغل جالب و قشنگ فأنما قبل عام صورة من الكلا من الكلام تخالف صورة ما بعدها مگه قبل قبل از عام اون امیکا وسط ایام مد است و ان لا ندری اثرر اوریدا به من فل ارض شدید میگه ما قبل ام صورتی دارد که فرق میکند با صورتش بعد از این فعل اراده دقت يجا مجهول مده أريده ويجا سيو مده معلوم مده أراده يجا مبنية للمفؤوله ويجا مبنية للفاعله وأنه لا ندري أشر أريده بمن في الأرض نقول أشر أراد الله بمن في الأرض مختزاية در نظر گرفته خوب لان الاولى فيها فعل الاراده مبني للمجهول والثانيه فيها فعل الاراده مبني للمعلوم در اولی فعل مبنی للمفعول هست وریده هست وریده مول هست اراده هست دیگه و در دومی فعل الإرادة مبني للمعلوم. فعل إرادة وخاصة كمصدر إرادة يريد إراده. مصدر الشيء ده فعل إرادة مبني للتحص. للمعلومة ده. بس لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول. فعل إراده مبني لل هست. اگر گفت، نگفته بودند مبنیه للمجهول بهتر بود میدونید چرا چون نائب فاعل هست شده ولی همون الله مجهول نیست فقط مبنیه للمفعوله ولی خب میشه گفت در اینجا یعنی فاعل معلوم نیست منظوری نیست که به شکل کلی مجهوله منظوری نیست که به کلی چه و میشه توجیه دیگرش کرد که چرا اینجا گفتن مبنی للماجهول و نگفتن مبنی للمفعول بخاطر اینکه این مجهول الان اصطلاحی است برای فعل های مجهول حالا چه اول فاعل مجهول باشه یا کلا مجهول نباشه اما به خاطر اراده های دیگه فائل ذکر نشوده باشه این یک اصطلاحه این یک اصطلاحه چه جا <تصفيق> میده جلوی میگه والحال الداعي لذلك نسبة الخير اليه سبحانه وتعالى في الثانية و نسبة نسبت الشر إليه في الأولى. بج مقتضای حال حال انتیزو تلب طلب میکنه این چیزو میخواد که خیر در دومی نسبت داده بشه به الله متعال ام اراد بهم ربهم رشده اراد بهم ربهم اینجا رشدا نسبت داده شده به کی به الله اما اونجا که شر بود اونجا که در قسمت اول آیه شر بود دیگه نسبتش به الله نداد بلکه فعل مبنی للمجهول کار رفت للمفعول و انا لا ندري اشرون اریده به من فی الارض فائل مشخص نکرد پس حال این چیزو خواست با توجه به در نظر گرفتن مقتضای حال در اولی مجهول به کار رفته و در دوهوی معلوم و من او نسبت شر الهی فی الولا و من کردن نسبت شر در اولی یعنی در قبل از عمل؟ در قبل از عامي يناري باش باله وينحصر الكلامو هبي بيجايد ديجا وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانه في ثمانيه ابواب وخاتمة منحصر مش كلام دريم علم در باب ويك خاتمه یعنی در بحث علم چی؟ معانی پس ما در, این در بحث معانی چند باب خواهیم خون بزن الله؟ هشت باب و یک خاتمه ابتدا شروع میشه الباب الاول فی الخبر والانشاء. باب اول موضوعش در رابطه با چیست؟ در رابطه با خبر و انشاه است در این باب خبر و انشاه رو توضیح میده و تقریبا شما این مسائل این باب رو در کتب نحوی خوندید در همین اصلا خود از نحوی میر که شروع بشه تا آخرش کل کلام فهو اما خبرون او انشاه هر کلامی یا خبر است یا؟ ارشاد والخبر ما يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه حالا دار تعریف میکنه میگه خبران است که صحیح باشد در رابطه با گوینده آن خبر گفته شود انه صادق في او کذبان که گوینده راست میگوید یا دروغ میگوید خبری که بتواند گوینده را متصف به صدق یا کذب کرد بهش میگن چی؟ خبر. مثلا اینکه طرف میاد میگه در جاده تصادفی رخ داده است. میشه این گوینده رو متصف به چه کرد؟ صدق و کذب. پس اینو میگن چی؟ خبر. اما موقعی که شخصی میاد به شما میگه آقا بلند شو. شما میتونی بهش میگی دروغ میگی؟ نمیشه پس اولین شاخه خوب بریم جلوتر کسافر محمد و علی المقیمون مانند سافر محمد محمد سفر کرد و علی مقیم است والانشاء ما لا يصح ان يقال لقائله ذلك ارشاءن است که صحیح نباشد که بگویندش اون چیز رو یعنی صدقو کذب گفت ارشاءن است که نمیشه بگوینده گفت که راست میگویاد یا دروغ لغوت مانند سافر یا محمد سفر کن ای محمد و اقیم یا علی بیست ای علی و المراد بصدق الخبر مطابقته و وبكذبه عدم مطابقته له منظور از راست بودن خبر این است که مطابقت داشته باشه با واقعیت و منظور از کذبش این است که با واقع مطابقاتنا داشته باش فجملة ألي المقيم فس جملة ألي المقي المقيمون إن كان نسبة المفهومة منها مطابقة لما في الخارج فصداقه يفصدقه خوب ميقه جمله علی مقیمون اگر نسبتی که فهمیده شده است از این جمله با خارج مطابقت داشته باشه یعنی علی مقیم باشه اون موقع راسته در غیر این صورت چیه دروغه ولی کل جمله رکنان هر جمله چی داره دو رکن داره محکوم علیه و محکوم به یک محكوم عليه دو محكوم به مانند زیدون قائمون زیدون محکوم عليه قائمون هم محکوم به مانند نصر علیون نصر محکوم به علیون محکوم عليه و یسمى الاول مسند الیه اولی که محكوم عليه باشه مسند الیه نامیده بشه كالفاعل ونائبه والمبتدئ الذي له خبر معنى اندى فائل بشه بيجان محكوم اليه یا مسند اليه ونائب فاعل هم تورين معنى اندى نصر علي نائب فاعل نصر زيدون والمبتدئ الذي خبر وان مبتدئي خبر داشته باشه چون ما مبتدئه هاي داريم كخبر نداره معنى اندى اقائمون الزيدون اجا قائمونك مبتدائه ولزيدون فائله اسم فائله أما خبري إجاده نا داري فس جملة درو كنداره محكم عليه ومحكم به أما لرو مسند إله ميجان يعني محكم عليه رو معنى فائل محكم عليه ناعم فائل محكم عليه ومبتدى محكم عليه يا مسند إله ويسمى الثاني مسنداً كالفعه دومی مسند نامیده میشه مانند فیل مانند نصاره زیدون نصاره مسنده زیدون مسنده اله والمبتدا المبتده بمرفوعه به مرفوعه و مبتدهی که اکتفا کرده به مرفوعش یعنی خبر نداره فقط مرفوع داره عامل خود مبتدا و اون مرفوع فائلشه یا مفعولشه خلاصه مرفوعشه مانند اقائمون زیدون انجا خبر دیگه اینجا مثلا بگیم اینجا مبتدا مسند الیه و خبر مسنده و خبر چیه مسنده یا مثلا اقائم زیدن اینجا مبتدا مسنده مسند الیه دیگه نیست ولی اون مبتدا هایی که خبر دارند اونجا مبتدا مسنده الیه اون مبتداهایی که چه دارن خبر دارن اونجا مبتدا مسند الیه میگیم زیدون قائمون قائمون رو اسناد کردیم به زید اینجا زید مسند الیه مبتدا ولی در اونجا هایی که مبتدا خبر نداره مبتدا مسنده دیگه مسند الیه نیست بلکه مرفوع مسند الیه بلکه اونجا مرفوع مانند قائمون زیدون اینجا میگیم قائمون مبتدا مسند زیدون که فائله میشه چی؟ مسند الیه متوجه شدیدین مسئله رو بریم جلوتر الکلام و الخبر کلام برخبر خبر الخبر اما ان یکون جمله فعلیه او اسمیه خبر یا جمله فعلیه هست یا جمله اسمیه هست فالأول موضوعه لإفادة الحدوث في زمن مخصوص اولی یعنی فیلیه وضع شده است برای افاده کردن یا دلالت کردن فعل الخبر إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية خبر يا جملة فعلية است يا اسمية است فالأولى يعني فعلية موضوعة لإفادة الحدوث في زمن مخصوص أولي واضح شده تادلالات بكنات بر كاري در زمان خاص ما الاختصار؟ به اختصار پس اولی وز شده تا به اختصار پدید آمدن کاری رو در زمانی مشخص کار کند افاده بکند بفهماند و قد الاستمرار التجددی بالقرائن و گاهی جمله فعلیه استمرار رو میرساند چی رو میرسوند؟ دیگه اختصار رو نه بلکه چی رو میرسونه استمرار رو میرسونه استمراری که تجدد داره ولی با قریره چه زمان استمرار رو میرسونه با قریره اذا کان الفعل مضارعا زمانی که فعل چه باشه مضارع باشه یعنی زمانی که اون جمله فعلیه فعلش فیل چی باشه مضارعی باشد که قول طریف مانند این شعر تعریف که میگه او کلما واردت او قبیله بعثوا الیا عریفهم يتوسم آیه هرگاه وارد میشد به بازار اوکاز قبیله ای میفرستادند به سمت من کاردانشان را تا با فراست چهره ها رو نگاه کند و از روی علائم به مسئله پی ببرد یعنی تا بشناسند که من اومدم تا بشناسند که من چیکار کردم ؟ بله عریف این کاردان کارشنست یا تاسسم او یعنی اون شخصی که یه چیزی می نگره و از روی نشانی به حقیقت کار میکنه پی می بره و امر را از روی علاماتش درک میکنه آیا هر وقت وارد او اوکاز شود قبیله ای می فرستند به سمت من کاردار و کارشناسشون رو تا چهره ها رو به دقت بنگرد تا از روی فراست پی ببرد این مسئله چون این هست که این آقا قتلی انجام داده و الان دنبالش هستند که بشناسندشد آ بله با افتخار این شعر رو میخونه پس اولی واضح شده برای اون معنایی که گفتیم یعنی جمله فعلیه و ثانیه موضوعه لمجرد ثبوت المسند للمسند الیه و دومی یعنی جمله اسمیه واضح شده است فقط برای صرف ثابت کردن مسند برای مسند الیه زید ایستاده است یعنی ثابت بکنه که زید چاست، هست؟ ایسا ده هست زیدون آلمون زید آلم است؟ اه؟ نحو الشمس شمس و مضیعتون ماننده اش شمس و مضیعتون که بگه خورشید چه هست؟ دارد لور دارند. بگه که خورشید در اخشان است برای خورشید چه رو ثابت کنه نور را پس دومه وضع شده است برای اثبات شدن مسند برای مسند الی وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم يكن في خبرها فعل و استمرار رو میرسونت فقط ثبوت نه بلکه چه رو استمرار رو یعنی استمرار خبر برای مبتلا خبر برای چی؟ به وسیله قرائن زمانی که در خبرش فعلی وجود نداشته باشد نحو العلم نافع مانند العلم نافع همونطور که اونجا یه توسمو فعل مزاره بود استمرار رو می رسون اینجا هم نافعون چی رو رسونه؟ بله چون اسم فله و اسم به بمانند فعل مزاره چ رو میرسونه؟ استقبال رو تونه برسونه و اونجا هم یه فعل بود؟ مزاره بود پس علم نافع هست ولی نفعی که استمرار داره نفعی چیه بله مثل این نیست که ما بگیم زید ایجاد هست فقط ثبوت ایجادان رو برای زید ثابت کنیم ایجادان رو برای زید چی کنیم بلکه بلکه نافع بودن استمراریه بلکه چیه دائمیه بله پس با توجه به قرائن جمله اسمیه هم میتونه افاده کنه استمرار بکنه میتونه افاده استمرار بکنه بالا با توجه به قرینه والاصل فی الخبر ان يلقى لافاده المخاطب الحكم الذي تزمنته الجملة اصل در ایراد جمله خبری این است که والاصل الاصل فی ان یلقا اصل در خبر این است که ایلقا شود ایراد شود لی المخاطبی المخاتبی الحکمه الحكم مفعول به این افاده هست این است؟ مصدر یعنی مصدر عامل هست دیگه ای که از عوامل چیه؟ مصدره اصل در خبر این است که القا شود ایراد شود تا افاده کند مخاطب را حکمی تا به مخاطب چی رو افاده کند؟ حکمی را حکمی را که جمله متضمن آن هست حکمی را که جمله معنید که میگیم نصر زیتون. ما با گفتنی این جمله یک حکمی رو به مخاطب چکار کردیم؟ رسول. زید رفت. زید رفت. زیاد آمد. زید خورد. یه حکمی رو به کی می رسونیم؟ مخاطب. کما فی قولنا همان طور که در این قول ما آمده است همار رو، امیر حاضر شد اینجا ما حکمی رو برکیره رسوندیم به مخاطب پس الان داره میگه که چرا جمله خبری القا میشه الان داره این نکته رو توضیح میده که چرا جمله خبری میشه ایراد میشه بله اول الافاده ان المتکلم عالم به یا القا میشه برای افاده کردن این چیز که متکلم گوینده عالم به اون حکم هست به اون خبر هست نحو انت حضرت امس اینجا مخاطب خبر داره مخاطب دیروز اونجا بوده متکلم بهش میگه تو دیروز حاضر شدی تو دیروز خوب ای این جمله چرا القا شد؟ که متکلم خبر داره متکلم آلم به این چیز هست گوینده متعدد شدی ما و یسم ما الحکم فائده خبری و نامیده میشه حکم همون فائده خبر پس موقعی که در ابتدای جمله گفت اصل در خبر است که القا شود تا به مخاطب حکمی افاده شود ويصمم الحكم فائده الخبر حكم چنا نامیده میشه فائده خبر و المتکلم عالما به لازم الفائده و آگاه بودن متکلم به آن آگاه بودن متکلم به آن چه نامیده میشه لازم الفائده این بود پس اینی که متکلم از حکم خبر بوده بهش میگن لازم الفائده خب این بود غرض از ایراد خبر و قد یلق الخبر لأغراض اغراض اخرى اما گاهی خبر برای اغراض دیگری ایراد میشه القا میشه. همیشه افاده حکم به مخاطب نیست یا همیشه افاده این نیست که متکلم عالمه گاهی به اغراض دیگه هم خبر میشه. بیشه القا میشه که اونا رو مختصران ذکر میکنه یک کل استرحام یکی از اون اغراض چیه استرحام مهرجویست فی قول موسی علیه السلام در سخن موسیٰ علیه السلام رب اینی لما انزلت ایلی من خیر فقیر پروردگارا همانا من به آنچه را که به سمت من از نعمتی فروعاری فقیر هستم نیازمند هستم پروردگارا همانا من به آنچه که برای من نازل کنی نیازمند هستم از خیر. چه هستم؟ اینو موسی چرا میگه؟ بخاطر استرحام و مهرجویی این سخن و ماتره بیکنه موسی اینجا نمیخواد که خدا رو از حال خود اشتیکار کنه با خبر بکنه متنج شده مولا بی؟ بي بلکه میخواد رحمت رحمت الله متعال رو طلب بکنه جلب بکنه دو و اظهار و اظهار ضعفی وإظهار الضعف إن معتوف هست بإسترحام كالإسترحام وإظهار الضعف وتعادل شو في قول زكريا عليه السلام در سخانة زكريا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا زكريا قفت پر وردگارا استخانم سوست دار دي دي شده هست اینجا از قرض از, از القای خبر چه بوده است اظهار ضعف بوده است سه و اظهار التحسری غرض دیگر اظهار تحصر حسرت و حزن حسرت و حزن. فی قول امراه امران رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت نذری کرده بود این مادر امران که اگر فرزندش پسر بشود نذری کرده بود خادم بیت المقدس شود اما بچه که به دنیا اومد زن بود با این با بیان کردن این جمله نمی خواست خدا رو خبر بده بلکه اظهارش کرد تحسر کرد پروردگار را من وضع حمل کرده و دختری است و آنجاست دختری است دیگر و اظهار به بمقبلن و اظهار شادمانی کردن به آنچه که رسیده است و شماتت به مدبرن و بدگویی کردن از آنچه که پشت کرده است رفته است و قل جاء الحق زهق الباطل غرض بعدی و اظهار سرور اظهار شادی مانند این در این جمله در این سخنت اخذ تو جایزت تقدم جایزه برتری را گرفتم این, ج... این سخن را لی من یعلمو بذالک اگر تو به کسی که خودش اینو میدونه بگی اینجا تو که اونو خبر ندادی بلکه این جمله رو به خاطر چی گفتی؟ اظهار سرور و شادمانی پس اخف تو جائزت التقدم لمن یعلم و اگر این جمله رو تو برای کسی که اون رو میدونه بگی اون موقع این خبر حدف زیرادش چی بوده است اظهار سرور بوده است و غرز بعدی توبیخ است فی قول که در سخنت برای شخصی که لغزیده است عافر یعنی چی؟ الشمس طالعه الشمس خورشید طلوع کرده است چون طلوع خورشید رو هر کسی میداند خود اون شخص که تو داری بهش میگی چیکار کرده بله خلاصه اغراض دیگه‌ای هم وجود داره چون نویسندگان این کتابو در سطح ابتدایی دونسهن مطرحش نکردن ما هم مطرح نمی‌کونیم اضرب الخبری فی کیفیه كيف القائه للمخاطب أنواع خبر در کیفیت القایش برای مخاطب ببینید إنكش که مخاطب شما شما باید مخاطب در نظر بگیرید و سخن تو القا بکنی و سخن تو چیکار کنی با توجبه مخاطب نوع القا هم فرق می‌کنه نوع القا هم چیکار می‌کنه انواع خبر رو با تواجب به نوع مخاطب اینجا مطرح میکنه که به چند گونه است حیفوکان قصد المخبری بخبری افادت المخاطبی یعنی بقي ان يقتصر یقتصر من الكلام على قدر الحاج بگونه ای که قصد خبر دهنده از خبرش این باشد که مخاطب رو افاده ای کرده باشه فائده ای داده باشه شایسته است که در کلامش اکتفای به اندازه نیاز بکنه شایسته است که در سخنش گوینده اکتفای به چی بکنه به اندازه نیاز بکنه خزر من اللغ تا از لغ پرهیز شده باشه تا از لغ چی شده باشه فان کان المخاطب خالی ذهنی من الحکمی القی الیه الخبر مجردن ان اگر مخاطب خالی و ذهن از اون حکمی بود که قرار شما بش بگی اون موقع خبر القامی میشه به اون مخاطب خالی از تأکید اگر شما خواستید حکمی رو افاده مخاطب کنید و مخاطب خالی و ذهن بود اون موقع در سخن تأکید نمیاری نحو اخوک قادمون بخوای به برادرت بگی که بر. ب... میخوای به شخص بگی که برادرت داره میاد یا آماده است یا میاد بگی اخوکه قادمون بدون تاکید و انکانه مترددن فیهی طالب لی معرفتهی اما اگر مخاطب متردد بود و میخواست که بشناسه میخواست که چکار کنه؟ میخواست که به اون موقع حسن توکیدو زیباست که اون سخن چی بشه تاکید بشه این ناخاک قادمون همان برادرت داره چی کار میکنه میاد و این کار منکران، اگر مخاطب منکر بود منکر اون حکم بود واجب توکیدو به مؤکدین او مؤکدینی او اکثر واجب است که اون خبر تأکید با, یک تأکید. با یک تأکید کننده یا دو تا یا بیشتر پس واجب است که اون سخن تأکید بشه با یک تأکید کننده یا دو تا یا بیشتر حسب درجه انکار بر حسب درجه انکار مخاطب هر چقدر درجه انکار شدیدتر بود بیشتر تأکید بشه بیشتر چه بشه؟ نحو ان اخاک قادم اجابا یک مؤکد تأکید شده با ان نه فقط همان برادرت بیاد او انه لا یا با دوتا. هم با ان هم با لام هم با ان هم با انه لا قادمن یا با سه والله انه لا با سوگند با ان با بالا با چند تأکید شده با خدا او بیاد ببینید نخطه قشنگی رو گفت با توجه به حالت مخاطب چه بچه؟ اگر خالی و ذهن بود بدون تأکید متردد بود منکر بود بله فالخبر به نسبت لخلویه من التوکید و اجتماعیه علیه ثلاثت و اضرب پس در نتیجه خبر با توجه به خالی بودنش از تأکید یا شامل بودن بر تأکید الک درش تاکید اومده است یا تاکید نمیده اومده است بر چند هست بر سه هست. هست و ضربن بر سه هست که ما رای تمان دیدی و یسما الضرب الاول ابتدائیا اولک خالی از تاکید بود ابتدایی بود و ثانی طلبیان دومی که شایسته بود توکید بشه بهش طلبی میگن و ثالث انکاریان و سیومی چی نامیده میشه انکاری ادوات و توقید بعد از این که اومد گفت تأکید بشه حالا داره یاد میده که با چه چی چیزی در زبان عرب چکار میکنن؟ تأکید میکنن با چه ادواتی و یکون و توقید به ان و ان. توكيد به وسیله ان انجام میگیره به وسیله ان انجام میگیره و لام ابتدا و به وسیله لام ال ابتدا انجام میگره و احرف تنبیح و به وسیله حرف تنبیه انجام میگیره مانند الا ان اولیا الله الا خوف و اونارو خودت مسئله شرد دیگه بلدی نه و القسم به وسیله قسم انجام میگیره مانند همون مثالی که آورده بود والله انه لقادم والله ها ونول توقيت بعد دلول تأكيد معنى ده لينصرن الله من ينصره وحروف چرا قفتن نونه توقيت كل ما نولة خفيفة داري ونولة سقيلة داري والحروف الزائدة بحروف الزائدة هم تأكيد مشه معنى ده عليس الله بكافن عبده اي الله براي بانداش كافي نيس ان بايك روي كاف ده کافین چسبیده؟ این کافین اسم فاعل کافیون بوده در است مثل دائن دایون. علیس الله به کافین این با که روی کاف چسبیده چه هست؟ زائده پس توقید با ان و انه میشه مانند اینه زیدن آلمون با انه زمانی که وسط بیاد اینه و انه ای چی هستن فقط؟ اون در بحث نه میاد که چه جای؟ نه کس داره و چه جایی؟ که شما در قطرول ادام مفصل خواهید خود خوب بریم جلوتر حروف تکریف یکی از ادوات تکید اینه که تکرار بکنی مثلا بگی نصره نصره علیون نصره رو چکار کردیم؟ تکرار کردیم یا یک اسم رو تکرار کنی یا فعل یا حرف یا جمله رو کامل یا تیرو؟ که اینا رو و قد یکی از عدوات تأکیدیه قد هست ماننده قد افلحه و قد خوابه من دسته این همه شکل تأکیده و اما, و اما شرطیه و اما شرطیه جان نه اما اما نه از چیزای دیگه اما اما شرطیه از ادوات تاکیده اما چیز دیگه یه برادره انشالله خواهی خود اما ها و اما ها یا این یا این اون چیز دیگه امایه اما اما که از ادوات تاکیده کیته باره خب نه دیگه اینو تموم میکنیم بخاطر این که اغلا کتاب طولانیه الکلام و الانشاء الانشا و اما طلبیون اینا که تا اینجا کار خوندیم هیچ چیز جدیدی نخوندیم الانشا و اما طلبیون او غیر و طلبیون. چون احتمال داره من بعدش سفری برم و کتاب جا بمونه مثل کتاب دیگه انشا یا است یا غیر طلبی خود انشا رو مطرح کرده ابتدای این بحث الان داره میگه که انشا بر دنوه یا طلبی هست مانند امر یا غیر طلبی هست مانند مثلا سیقه های اقود بیعتو اشتریتو ها ما يستدعی مطلوبا غير حاصل وقت طلبی طل... انشاید طلبی آنست که خواستار باشد مطلوبی را که در وقت طلب موجود نبوده است که در وقت طلب حاصل نبوده است وجود نداشته است مانند ده انشاء طلبی آن است که بخواهد مطلوبی را که به هنگام درخواست وجود نداشته است و غیر طلبی مالیسا کذلک و انشاء غیر طلبی آن است که چنین نباشد و الاول یکون بخمسه اشیاء انشاء طلبی به پنج چیز الامر و النهی و الاستفهام و التمنی و امر نه استفهام و تمانی و ندار ما در این درست چیز خاصی نمیخونیم فقط امر و نه استفهام و تمانی و ندار رو میکنیم و بحثمون میشه که اینا همه شون در خوندی یعنی اینارو. رو اما الامر مختصر توضیح میدم و تموش میکنیم اما امر فهو طلب الفعل علا وجه الاستیلا اما چه طلب کردن فعل بر وجه برتری طلبانه برتری جویانه وله أربعة صيغ، وچارتا صيغة داره، وچنتا صيغة داره أمر، فعل الأمر يك فعل أمر يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيا كتاب را بمحكمي قوة بجير، خذ إذا فعل أمره معي. بس أمر ديجي لشخصة أنسار خذ قام والمضار والمقرول باللام یکی از صیغائے امر اون مضاری که کے لا به امر داره مانند لیون فق دو ساعتن من ساعته خرج کند توانمند از توانش ها لینصر یعنی یاری کند و اسم فعل امر اسم فعل امر یکی از امره امر مانند حیا علی الفلاح مانند حیا علی ال... حیا یعنی بشتاب فعل امر نیست بلکه اسم فعله بلکه چی است به معنای امر یا مانند همین آمینی که در نماز میگیم آمین اسم فعل امره به معنی استجب به معنی چرا امر نیست؟ چون یای مخاطب و قبول نمی یا یای مخاطب و قبول که اینو شما در قطرانی مفصل می بعضی میگن آمین، بی رو تجدید میدن. این چیه؟ اشتباهه. آمینه. آ مین. خب. و النائب عن فعل الامر چارمین سیغه مصدری است که نائب فعل امره. جانشین از فعل امره. مانند سعی فی خیر یعنی بشتاب در خیر. سعی کنتی؟ نه وقد تخرج تخرجو سیغ ان معناها الاصلی الى معان اخر تفهم من سیاق کلام و قرائن الاحوال و گاهی سیغه امر از معناه اصلیش به معناهای دیگه ای خارج میگردد که از سیاق کلام و قرینه حال مشخص میشه که دعا یکی از معناهایی که معناه خارج میگرده و صرف به اون معنا میشه چه هست؟ دعا هست بأن ندرب اوزعني ان اشكر نعمتك خب اینجا دعای چون اینجا درخواست درش برتری طلبانه برتری جویانه وجود نداره تو از الله متعال که قدرتش بالاتره چکار میکنی طلب میکنی پس هرگاه این امر موجه متوجه به الله باشه به با اون موقع معناش معنا کیه دعای از معنای امر خارج شده و به معنای دعا گرویده است رب اوزعنی ان اشکر نعمتک مانند این مثال و ال التماس معنای دیگی که به اون معنا میگراید خارج میشه التماس هست که قول که لمن یساویک مانند سخن تو طلب تو برای شخصی که او مساویه با توست. ضعیفتر از تو نیست بلکه بالاتر از تو نیست اگر بالاتر از تو می بود که خدا بود که دعاست مساویه با تو، بهش میگن التماس. معنی ده اعطی کتاب رو به من بده. این التماسه. سومین معنا و تمنی تمنا کردن. مانند ده علا، آیهاللیل و الطیل انجلی بصبح و مل اسباح و بامثلی. ای شبه بلند با آمدن صبح سپری شو آشکار شو و من اصباح که به امفل و اینو بدون که صبح و بامداد بهتر از تو نیست آه؟ دردمند بیچاره میگه ای شب طولانی با آمدن صبح سپری شو که البته بامداد هم از تو بهتر نیست پس اینجا این یک تمنا هست. این یک چی چون داره شب و خطاب قرار میده، دستور میده. انجلی هست. ارشاد یکی از معانیش که از امر خارج میشه و اون معنا رو میده ارشاد هست. مانند یا ای الی الذین امر واذا تداجرتم بدین الی اجل مسمن فاکتبوه. اینجا وجوب نیست بلکه چی است؟ ارشاد هست. بعدش تهديد والتهديد اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير انشراك الدلتان بخاد انجام لهيد دار التحديد شن ميكون والتعجيس ناتوان دانستان ما ننده يا لبكر انشرو لي كليبا يا لبكر اينا اينا الفرارو اي بكر قميله ديگه كليب رو برايمن زنده كليد اي بكر بكجاة به کجا فرار میکنید کلهبر را برای من زنده کنید اسم ما اسو یا لباکر انشرو لی کلهبن یا لباکر اینا اینا الفرار جون انشرو حرکت دا اونجا؟ نه اون شروع نیست انشروعه نه انشروعه اگر حمزه وصل باشه که درست ولی این حمزه قطه نه شرایان شروعه نه شرایان شروعه جلوتر دیگرش چه هست؟ اهانت هست اینو بعدا برو بررسی کن عزیزم اهانه مانند و حجارتا او حدیدا اینجا امر کلو به معنی هست کلو واشربو هلیان کلو واشربو به معنی اباحه هستند و الامتنان معنای دیگر امتنان مننت نهادن هست. بالند مما رزقكم الله بعدش تخییر هست اختیار دادن مانند خود ها و اوضاق این یا اونو بردار بگیر و تصویر معنای دیگش تصویر هست برابر دانستن اسلوها فصبرو اولا تصویرو والا اکرام معنی دیگش اکرام هست مانند ادخلوها بسلام آمینین معنای دیگش دی معنای دیگه دی اینجا ذکر نکرده بله ما نه دیگه روز ذکر نکردند مؤلفان محترم و بزرگوار واقعا زحمت کشیدند و اما نه فهو طلب الكفی عن الفعل على وجه الاستعلاء اما نه چی است طلب کردن ببینید امر طلب کردن فعل بود بر وجه استیلا نه چی است فهو طلب الكفی عن الفعل على وجه الاستعلاء طلب کردن بازداشتن از کار طلب کردن دست یهدشتن از کار نهی. یعنی این کارو نکن برخلاف امر بازم بر وجه استیلا وله سیغت واحد واحده نح یک سیغ در و هی المزارعو مع لا ناهیه و اون هم فیل مزارعه است با لا ناهیه که قوله تعالی ولا لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها فساد نکنید در زمین بعد از اصلاحش پس نه یک سیغه داره وقد تخرج سیغته ان معناها الاصلی الى معان الاخرى تفهمو من المقام والسیاق معنای نه هم از معنای اصلیش به معانی دیگه خارج میشه که از مقام و سیاق فهمیده میشوند اون معناها چی هستند یک که دعائی نحو فلا تشمت بیال اعدا دشمنان رو نسبت به من شاد مکن اینو حارون بکی گفت به برادرش موسا گفت اگر مثالای ای زده بود که خارج از که روش مناقشه و بحثی نبود بهتر بود ماننده ربنا لا تزغ قلوبنا این به معنی دعاه این به معنی چیه؟ دعایه چون اونجا نهی فلا تشوت بیل اعدا جزو نهی قرار میگیره چون برادر داره برادر رو میگه برادر داره که رو میگه؟ براد روميكي. والالتماسي معنى ديجيش التماسي كقولك اللي من يصابيك كبعضهم معندي يمكن شباب نهب كلي شخصي روكه باش ما كشيء مصافيه. injal نهب معنيه التماسي. لا تبرح من مكانك حتى ارجع اليك هما رسر جت ديجاه دار تا بار بجدا. injal لا تبرح كنهييه بمعنى التماسي. والتمني نحو لا تطلع تمنا کردن به معنی تمنا کردن یکی از معانی نهی مانند لا تطلو که در این شعر آمده یا ليل وطول یا نمذل یا صبح قف لا تطلو ای شب دراز باش طولانی باش یا نمذل ای خواب از بین برو زائل بشو زال یزولو فعل امرش میشه زول یا صبح قف ای صبح توقف کن لا تطلو اینجا نهیه ولی ببینید تمناه چون چیزی به دست نیافته نیست چیزی محال است اون یکی بند خدا که گفت صبح از شب بهتر نیست اون مشغول درد و رنج بود ها؟ هی بخواست که شب زورا... زودتر چی کار کنه؟ طلوع کنه این که هم با محبوبش حملشینی داره و مشغول لذاته خاصة الشيء زي جيه والتهديد تهديد يك يقصد معناهش تهديد كالقولك اللي خادمك ها على أيها الليل الطويل على انجلي ها خب بريمج الاوتر تهدید معنی در قولت یه ب... ب... سخنت برای خدمت گذارت لا تطیع عمری خب اینها بودن اون معانی که ك... کتاب آورده بود و عمل استفهام پس نحی رو داد امر رو توضیح داد استفهام مونده و عمل استفهام فهو طلب علمی بشین و ادواتوهو الحمزه استفهام طلب کردن علم بچیج استفهام یعنی طلب کردن علم بچیزی و ادواته ادوات استفام چه هستن؟ یک حمزه فالحمزه تو لطلب التصوری او التصدیق حمزه برای طلب التصور یا تصدیق بکار میره و التصور تصور چه هست؟ هو ادراک المفرد اون ادراک المفرد هست معنی دیگه دقت دی داشته دی باشین ماه زمین پنکه لامپ، این ادراک مفرده این چه؟ اما اگر من وقتم گفتم پنکه میچرخد اون موقع یه چیز رو نسبت به پنکه دادم قضاوتی انجام دادم حکمی بیان کردم نه؟ اون موقع میشه تصدیق اون موقع میشه چه؟ پس حمزه برای طلب تصور یا تصدیق بکار میره در استفام و التصور هو ادراک مفرد تصور ادراک مفرده که قولی که اعالی المصافرون ام خالد ای علی مسافر است یا خالد؟ اینجا که شما چیزی نسبت نمیدی بلکه تعیین میکنی میگی یا علی یا کی؟ خالد یا میگی یا علی یا خالد اینو بگن تصور تعتقد ان السفر حصل من احدهما اعتقاد داری که سفر یا از علی حاصل شده یا از کی؟ یا از خالد ولیکن تطلبوا او. اما میخوای که مشخص بشه که ای علی بوده یا خالد ولذا جوابو بالتعید لذا همچوری الاستفهامی با تعیین کردن جواب داده میشه که باد بگی علی یا خالد نمیتونی بگی بله یا نه با بله و نه نمیتونی چکار کنی بلکه با تعیین باید جواب بدی و علی مثلا مثلا علی گفته میشه یا خالد گفته میشه یکی از این دوتا ولی گفته میشه ول ولی تعیینش میکنی و تصدیق هو ادراک النسبة اما تصدیق ادراک نسبت است نسبت دادن چیزی به چیزی موقعی من میگم پنکه میچرخد اینجا من نسبتی دادم بپکا نهو اسافر علیون آیه علی سفر کرد اینجا دیگه تو نمیگی علی یا خالد بلکه میگی علی چیکار کرد سفر کرد بله تستفیمو عن حصول سفری و ادبه. اینجا تو طلب استفهام کردی از چی؟ از این که آیه علی سفر کرده یا سفر نکرده اینجا برای طلب تعین نیست ولیده یجابو به نعم اولا لذا. اینجا در تصدیق با نعم یا لا جواب داده میشه با چی جواب داده میشه؟ نعم یا لا و المسئول انه في التصور ما مسئول انه یا اونی که در موردش پرسیده شده است در تصور اونی هست که بعد از چی بیاد؟ بعد از حمزه بیاد اعالیون مصافرون ام خالد اعالیون مصافرون ام خالد ويقول له معادل يذكر بعد أم، والين تصور معادل داركه بعد أم ميات، باندي علي المسافر عام خالد، كخالد إنجا معادله علي هشت، وتصمم متصلة وإن أم متسللة بده بشه، فتقول في الاستفهام أن المصند إليه، أولي در مردش استفهام كردي یا مسند اله هست یا مسند است یا مفعول است الى آخر در استفابه از مسند اله اینجوری میپرسی اَنْتَ تفعلت هَذَا امْ يُوسف این کار رو تو کرده ای یا یوسف اینجا تو دارید از, از که میپرسی مسند اله فعلت دیگه مسنده فعلت یه مسنده و از مسند یا در استفهام از مصند اینجوری میگی راغب انت عن الامر امر راغب فی آیا تو راغب امر از این کار هستی یا رغبت به این کار داری و عن المفعول یا استفهام از مفعول ایا یا تقصیدو ام خالدن ایا هدفت من هستم یا خالد و عن الحال یا حال استفهام از حال اراکبن جئتا ام ماشین آیا سواره آمده ای یا پیاده در حال که سوار بودی آمده ای یا پیاده و این ظرف یا از ظرف مانند ایوم الخمیسی قدمتا ایوم الجمعه ای روز پنشنبه همده ای یا جمعه و هاکذا و إلى آخر و قد لا يذكر المعادل و معادل معادلی ذکر نمیشه نحو مانند ای انت فعلت هادا آی تو این کارو کردی ای راغمون انت عن الامر از امر راغب هستی ايه يا قصد کرده ای پیاده قریب تا روز ها من کی بین, و بین, و بین و استفهام حرف استفهام ما ادوات استفهام یا حرفند یا اسم حرفها محلی از ای رب حرفها محلی از ایراب یعنی حمزه و بقیه اسمند خب و المسئول انه في تصدیق النسبة مسئول انه اونی که در موردش پرسیده شده در, تس در, نس در, تس در تص تصور نه در تصدیق جهاز نسبت هست و لا لها معادل و معادلی ندارد فا امجاعت ان بعدها قدرت منقطعتن اگر احیانا هم امی بعد از تصدیق و بود اون موقع منقطع هست یعنی متصل. متصل نیست بله بلخراف اون امی که اونجا متصل بود اینجا دیگه دلقت بکنید جا از ام بکرون اینجا هم متصله اینجا ام چیه؟ متصل. متصل هست اما اگر در تصدیق بیاد اون موقع چیه؟ مورد قطع هست و به معنی بل هست به معنی چست بل هست پس به معنی بل ابول بل ازراب هست نه بلکه به معنی متصل است مثلا موقعی که من بگم اجا از زیدن ام بکرون دقت کنید اگر اینجا بحث تصدیق اون موقع اینجا اد به معنی اضرابه به این معنی اجا زیدون من اشتباه کردم که در در که دارم از بکر میپرسم ها به جای که بگم آیا بکر واد میگم اجا زیدون بعدش میگم بل بکرون ها میکنن آیا زید اومد؟ میگم این حرف من اشتباهه آی بک رومت این به معنی اضرابه این به معنی چه؟ اما متصل اینه که آی این اومد یا اون اومد آی این اومد یا؟ به معنی یا هست اونجا. اما اینجا به معنی بل هست و پس دقت داشته باشید بحث استفهام پیش اومد بحث چی پیش اومد؟ عدوات استفهام و نام برد بعد این عدوات داره توضیح میده. میگه حمزه یا برای طلب تصور به کار میره یا تصدیق طلب تصورش مانند این که اجا ازیدون ان بکر این تصوره تو میگی زید یا بکر دیگه اما اگر بگم اراغ انت ان امری این میشه چی هستی بله پس ا هم برای تصور هم برای تصدیق حل فقط برای تصدیق بکار میده حل فقط برای چه کار میده؟ بقیه برای تصور و حل لطلب تصدیق فقط هل فقط برای طلب تصدیق بکار کار باننده حل جا صدیقو ک آیا دوست تو اومد دیگه تو با تعیین جواب نمیدی با تعیین جواب بلکه جواب در جواب چی میگیم؟ وال جواب نعم او لا جواب اینه که بله یا نه بله آمد نه نا. نه آمد پس مسئول انه در تصدیق چه هست؟ نسبت است ولذا لذا یمتنعو معاها ذکر المعادل لذا ممنوع هست ذکر معادل یعنی باحل فلا یقال گفته نمیشه هل جا صدیقوکا ام ادووکا آ دوست اومد یا دشمنت چون این اگر اینجوری بگیم این طلب تس... ت... تصوره در حالی که حل برای طلب تصور بکار نمیره باید بگیم هل جا سبیقوک هل جا دیگه نمیتونیم بگیم ام ادوووک و هل تو سمه بسیطتا این بها ان وجود شئین فی نفسه و این هل بسیط نامیده میشه زمانی که استفهام بشه به وسیله آن از وجود چیزی در خودش از وجود چیزی در خودش مانند حل الانقا و موجودتون آیا انقا وجود دارد؟ آیا انقا اینو میگن بسیطه و مراکبتا این استفهی ما بیا ان وجود شیئن لشیئ و حل نامیده میشه زمانی که استفهام بشه به وسیله حل از وجود چیزی برای چیزی دیگر از وجود چیزی برای چیزی دیگر اگر من بگم آیا فلان چیز وجود دارد این بسیطه اگر من بگم آیا فلان چیز فلان کار رو انجام میده فلان چیز رو تولید میکنه اینجا من سوال کردم در مورد چیزی برای چیزه دیگر این موقع اون موقع این میشه حل مرکب ماننده هل طبیز الانقا و توفرخ ای توخ انقا این شد حل مرکب و ما پس حمزه را توضیح داد حمزه استفامو حلو توضیح داد داره ما رو توضیح بده یطلبو بها شرح الاسم ما چه کار داره در استفام طلب میشه به وسیله ما در رابطه با شرح اسم مانند مل اسجد اول لجین اسجد چه هست لوجین چه هست او حقیقت المسمه یعنی حقیقت این چی چه هست نحو مل انسان انسان چی هست او حال المذکوری ماه یا طلب میشه حالت اون چیزی که باش ذکر شده که قولی که لقا علیک مانند سخن تو برای شخصی که به سمتت میاد بشت میگی ما انت تو چه هستی تو چه صفتی داری تو کی هستی چه هستی پس این کاربورد ما بود مختصرا همه رو آورده و من يطلب بها من یطلبو بها تعیین الاقلا کاربرد من چه از در استفان؟ تعیین کردن تلب میشه به وسیله من تعیین اقلا که قولی که من فتح مصر چه کسی مصر را فتح کرد؟ چه کسی مصر را فتح کرد؟ اون اسجد به معنی طلا هست و لجن به معنی دقره. خب و من پس کاربورد منو توضیح داد و متا به بها تعیین زمان متا طلب میشه به وسیلش تعیین زمان ماضی انکانه و مستقبلا فرقی نمیکنه چه ماضی باشه چه مستقبل نحو متا جئت. کی اومدی پس میخواد با این متا چه کنه تعیین زمان کنه که که با من چکار کرد؟ تعین عاقل کرد؟ چه کسی اینو فت کرده؟ ها؟ دیگه نمیشه گفت ما فتح همه سره اگر بخواد تعین عاقل بکنه اگر بخواد چه کنه؟ و متا تذهب این هم به سالش برای مستقبله که میروی؟ تعین زمان کردن و ایانه یطلبو بها تعین زمان المستقبلی خاص اما ایانه طلب میشه به حسیلش تعین زمان آینده فقط وتكون في موضع التهويل ودرجاء التحويل و بزرق لشان داداني هولناك لشان داداني كقوله تعالى يسأل ايانا يوم الدين مي پرصد كي قيامت أسأل... يسأل ايانا يوم القيامة مي پرصد كي روز قيامت كي که البته بعضی از نحوی ها میگوین این برای تحویل هست و بعضی دیگر میگن نه برای تحویل نیست همیشه همیشه برای تحویل نیست یعنی در مسائل عادی هم با این ایانه پرسیده میشه خلاص اللحاز زمانی این ایانه برا برای چی زمانی کاربرد داره نه اللحاز زمانی برای زمان آینده کی هست روز قیامت و کیفا یطلب بها تعید الحال کیفا که از ادات استفامه طلب میشه به وسیلهش تعید حالت کردن مانند کیفا انت حالت چطوره و اینا یطلب بها تعید المکان اینا طلب میشه به وسیلهش تعید مکان کردن مانند اینا تف کجا میریوی و انک تقولوا به معنا کیفا که از ادوات استفهام هست برای چه معنی ای بکار میده؟ به معنی کیفه مانند انا یحی هادهی الله و بعد موتا خداوند چگونه این رو بعد از مرگش زنده می کند؟ یا به معنی اینه مانند قال یا مریم و انا لکی هاده؟ ای مریم بله به معنی من اینه هست ای مریم از کجاست برای تو این؟ پس اندا یا به معنی کیف است یا به معنی منعینه از کجا یا به معنی متا چه زمانی زر الناشد ملاقات کن هر وقت که خاصی خوب کم یطلب به تاویل عددی مبهم کم طلب کرده میشه به وسیلهش تعیین عددی مبهم مانند کم لبستم چقدر قدر ماندید؟ ایو یطلبو به تمیز تمییزو احد المتشارکین فی امر یع اموها ایو برای چی کار داره؟ طلب میشه به وسیلش مشخص کردن یکی از اون دو شرکت کنندهی در کاری که فراگیر هست بین هر دوتا ایو الفریقین خیرون مقابا کدوم یکی از اون دو گروه جایگاهش بهتر است؟ میخواد یکی از اون دو تا دوتار چکار کنه؟ تشخیص بده بیده بوزیلش تمیز داده بشه ویسألو بها عن الزمانی نا دیجه یکی مود با لی ادامه شه ویسألو بها عن الزمان والمكان والحال والأدد والآقل وغیریه حسب ما تضافه علیه میگو ايو... ایو پرسیده میشه به وسیله ایو یا طلب میشه به وسیله ایو در مورد زمان، مکان، حال، عدد، آقل و همه چیزی که تا کار ذکر شد یعنی ایو برای تمام اون معانی که تا اینجا ذکر شد کاربرد داره بر حسب اون چیزی که بهش مضاف میشه اگر مضاف شد به روز دلالت بر زمان میکنه ایو یومن سمته چی روزی را؟ متوجه شدید بزرگانم بسگی داره که ایوب چه چیزی مضاف بشه المعانی التي تستفاد من الاستفهام بالقراءت معانی دیگی که گرفته ك... میشوند از استفام با توجه به قرینه و قد تخرج الفاظ الاستفهام ان معناه الاصلی لمعان اخرى تفهم من سیاق الكلام و گاهی الفاظ استفهام از معنای اصلیشون خارج میشه به معانی دیگه‌ای که از سیاق کلام فهمیده می که ک تسویه مانند تسویه نحو سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون برابر است برانان آنان آیا بترسانی آنان را یا آنان را نترسانی اینجا به معنی استفهام نیست بلکه به معنی تسویه هست مساوی کردن برابری کردن و نفی یا به معنی نفی هل جزاء الاحسان الا احسان. اینجا هل استفام نیست بلکه نفیه یعنی نیست پاداش نیکی جزنی هل جزا الإحسان إلا الإحسان معنیش جاست باله والإنكار أغير الله تدون آية غير الله رو مخانيت عليس الله بكافي عبده آية نيست الله كافي براي بندع بندعش را پس إنجا استفهم نيست وداره إنكار میکنه معنیش ينه ك الله براي بندعش كافي است الله براي بندعش جاست كافي است والأمر فهل أنتم منتهون اینجا خدا درست به شکل استفهامی آورده ولی معنیشی اینه که انتحا دهید الله متعال در مورد خرابی شراب و قمار و این چیزا میگه در آخرش میگه فعلا تو منتهون معنیش چی که به معنی بمعنی انتهو به معنی ای اسلام آوردید به معنی اینه که اسلام بیاورید و اصلی مو به معنی چیه اصل هست ونه ما نده اتخشون فالله احقن تخشوه ای می ترسیدانان را ها خداوند داره به شکل استفهام ازشون میگه اتخشانم و از آنان میترسید ولی معنی شینه که از آنان نترسید از غیر الله نترسید اتخشوا به معنی لا تخشوا تخشوا تخشو هست تخشوا و تخشو تشویق پس اتخشانم به معنی لا تخشوا به معنی چی و تشویق به معنی تشویقی آنها الی الذين امنوا هل ادل لكم ايه هل ادل لكم سؤالي اما تشويقه والتعظيم بمعنى تعظيم من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه يعني عظمه خدا والتحقير هذا الذي مدحته كثيرا اينو چيزي كتو داش ديرا طول صدا تحكم بمعنى بس اقلو که یسویغو لکه انت کذا؟ اقلت به اجازه داده این کارو بکنی؟ تعجب وقالو ما لهذا الرسول یعکلو طعامو ویمشی في الاسواق اینجا گفتن چه هست این رسول را که میخوره ولی منظورشو استفام نبود برکه تعجب چی بود؟ تنبيه بر گمراهی فعینت از کجا میروید؟ یعنی داره خبرشون میکنی این راهی که شما میرید چیه؟ گمراهی و الوید یکی از معاری هست. اتفلو کد وقد وقّد احسن تو الک. این کار میکنی در حالی که بیت نیکی کردم. پس اینها اون معاری بودند که ادات استفام داشتند. فقط یکی دیگه مونده که اون چه هست تمنی هست و ندا که الان ان شاء الله در زارف ده دقیقه ممکن شه. و اما تمنی فهوا طلب چیه محبوب لا یورج حصوله لكونه او مستحیلا او یا بیاید الوقو. طلب کردن چیزی هست که چیز محبوبی هست که اما امیدی برای حاصل شدنش وجود نداره یا به خاطر این که مهال یا به خاطر این که بعید الوقوع هست واقع شدنش دور هست. که قولی علا یت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل ای کاش جوانی برمیگشت روزی تا آن که پیری با من کرده بود خبرش میکردم. تا از ان چرا که پیری با من کرده بود کارش میکردن؟ ببین بعضی ها رو اینو میخونن فا اخبروهو ولی این فای فا سببیه هست در جواب تمناو بدست ان اینجا وجوبن مستتره فا است. هست و پس اینجا جوانه چیز محالیه که بر بگرده اش میگن تماندی و همچنین قاول انسان تنگ دست لی تلی الف دینار کاش من هزار دینار داشتم. خب این به اید وقوع هست این چی پس این تمنا هست پس تمنا طلب کردن چیزی محبوب که حاصل شده یا محال یا به ایدول وقوع هست وللتمنی و ادوات تمنا کردن 4 ادات داره واحده اصلیه یکی شون اصلیه که یعنی برای اینکه تمنا کردن واضح شده و هی لیتا و اون لیتا هست و ثلاثه غیر اصلیه سه تا دیگه اصلی نیستند یعنی مجازن به این معنا به کار میرن اما در اصل برای این معنا نشود و هي حال يكيشو الحال هست فهل لنا بالشفعاء فيشفعوا لنا کاشک ما شفعائي داشتيد بله بله و اذا كان الامر, بالي بالي واذا كان الامر متوقع الحصول فان ترقبه يسمى ترجيا اگر امر اون حاصل شدنش قابل انتظار بود اون موقع انتظارش ترجي دابيده میشه. ويعبر عن بأساء أو لعله المغيب بوسائل أساء ولاعله أزج تعبير بشه نباليته ما ند الليعله الله يحدث بعد ذلك أمره ما ندين بصح وللتمني أربعة أدوات تمني أربعة أدات داره يكشون أصليه وهي ليته وقول ليتها وثلاثة نوعين أصليه ستة أصلي نستان إبرتند أزقول ستة أز حال فهل لنا من شفعه فهش فولنا ای کاش ما شفیانی داشتیم که برای ما کار میکردن پس اینجا حل به چی معنی بکار رفته؟ برای تمانده خود در قیامت دیگه این محاله برایشون این برایشون چیه؟ پس این حل برای چی معنی بکار رفته اینجا؟ تمانده یکی لو هست فلو اند لنا کرتن فنکونه بل المؤمنی ای کاش بازگشتی داشتیم این هم تمانده این هم حاصل شدنش مح پس اینجا لو به چه معنی بکار رفته؟ و الله و لعله هم برای همین معنی بکار میده ماننده اصرب هل من يعير جناحه لعلی الى من قد هويت اطير؟ ای سرب معنی گروه القطع پرندگان سنگ خاری رو بگن که مشروع بعضی از کتاباز به پرستو ترجمش کردن خلاصی پرنده ای گروه پرندگان هل من یعیرو جناهو آیه کسی هست که بالش رو به من هد لألی الى من قد هوی تو شاید من بتوانم بسوی آن کسی که دوستش دارن پروازی بکنن چقدر قشنگ دارون هدف خودش بیانش کرده مولا اصر بالقطع هل من یعیرو جناهو لألی الى من قد هوی تو گروه اینجا ا ببینید ندا هست اینجا ا هست حمزه ندا هست سرمه به خاطر این منصوبه القطاع جمع قطات هست که به معنی پرندگانی هست که هوای تو خواستم هوایش را کردم هواسش را کردم لعلی الى من قد هوای تو اتیرو شاید به سمت کسی که هواسش را کردم اون را خواستم هوایش را کردم پرواز کنم اطیره اطیره هست بله اطیرونیست انعنه ناسب مقدره نه ای این یکی که اینجا اطیره به خاطر اینه که 키... در جواب تمنا اگر فعل مزاره بیاد ما کنیم اگر فعل مزاره در جواب طلب و فلان و فلان بیومد منصوب میشد دیگه ماننده بله مساله زیادی داره فعلا بریم روی ایرابش بحث نمی ولی اینو بدون که منصوب با ان و اما ندا آخریش اما ندا فهو طلب و اقبال به حرف نائب مناب ادو طلب کردن توجه کردن یا درخواست توجه کردن مخاطب به وسیله حرفی که به جای عدعو قرار گرفته است جانشین چه شده است؟ موقعی میگم یا زید این یا جانشین عدعو هست یعنی عدعو زید صدا بیزنم کی رو؟ زید رو و عدوات حوثمانیه عدوات ندا هشتا هستند. یا الهمزه تو و ای و آ و ای و آیا و هیا و و اینا عدوات نداه هستن فالحمزت و ای للقریب الان میگه که به چه معناهای کار بردارن حمزه و ای برای نزدیک یعنی زمانی که مناعدای تو نزدیک باشه از چه عداتی استفاده میکنی؟ از حمزه و ای استفاده میکنی و غیرهما للبعید و باقیه یعنی جز از حمزه و ای برای مناعدای بعید کار بردارن و قد یونزل البعید منزلت القریب فیونازم الحمزتی و ای و گاهی موقع سر جای یا منزله منادای نزدیک قرار بگیره پس در نتیجه به وسیله حمزه و ا صدا زده میشه. صدا زده بشه, بشه. اشاره تا انه لشدت استحضاره فی ذهن متکلم صار كالهاضر معه تا اشاره ای باشه که حضور اون منادای بعید در ذهن متکلم شدیداً شدید هست و مانند شخصی هست که باش حاضره مانند شخصی هست که باش تیه حاضره که قول شاعر مانند این قول شاعر السکان نعمان الاراکی تیقنو به انکن فی ای قلبی سکانو این آه هم باز هم آیه آیه نداح هست ولی گفتی این همزه همزه ندا است مگر نه گفته بود حمزه برای منادا نزدیک کاربرد داره ولی اینا نزدیکش نیستن اما گفته بود که گاهی موقع بله منادا بعید به منزله منادا قریب قرار بگیره تا اشاره ای باشه که شدیداً حاضر هست در ذهن متکلم مانند این مثال از سکانه نعمان الاراکی تیقنو بانکم فی ربع قلبی سکانو ای ساکنان سرزمین نعمان الاراک یقین کنید که شما در دل من ساکن هستید که شما کجا ساکن هستید در دل من خوب او اشارتاً الى انحطات وقد ینزل القریب منزلة البعيد فیوناده با احد الحروف الموضوعه له وگاهی موقع قریب به منزله بعید قرار میگیرد پس در نتیجه بوسیله حروفی که برای مناده بعید وز شده اند برای قریب کاربور دارد یعنی قریب با حروفی که با عداتی که بعید نزازه زمیشه گاهی موقع قریب هم با اون عدات وقد ينزل القريب منزلة البعيد، فينادى بأحد الحروف الموضوعة له، وقاه قرار بجرد قريب بمنزلية بعيد، بس ندازد مشوات بايك يس حروفك براي بعيد تذعن وازرعشود يذعن. إشارة إلى أن المنادى عذيب الشني رفيق المرتبة. طا إشاري باشتك منادا شن و منزلة البزور جداري. رتبه بالایی داره حتی که ان بعد درجته فی العظمی ان درجته متکلیبی بعدون فی گویی که دور بودن درجهش در بزرگی از درجه متکلیب به بانند دوری در مسافت است. متوجه شدید که قولی یا ایا مولایا باننده ایا مولایا مولا زمانی که تو باش همراه هستی سرورت ولی از بس که جایگاه تو اور خیلی با هم دیگه فرق داره به این که بگی اما اولایا یا یا مولایا که این دوتا برای نزدیک هستند بیای از ادواتی که برای دور کاربوردارن استفاده میکنی بگی ایا مولایا ایا در حالی که مولات مجا همراهتی او اشارتن الی این حتاق درجی تی یا اشارهی باشد به این که مناده درجهش خیلی پاینه درجهش خیلی خ که قولی که آیا لمن هو معك موقعی که میگی ای آیا در حالی که تو همراه ها ولی بهش میگی آیا حالا آیا این در حالی که با همراه ها ولی درجش خیلی پایینه از آیایی که برای دور بکار با بار داره استفاده کردی او اشارتنی لنسان ها غافلون لنحو نومن او ظهولن یا ای باشد که سامع غافل هست مانند خابیدن و خیلی غافل شدن که انهو غیر حاضرن فی المجلس گویا که اصلا در مجلس حاضر بود بنادا. از بس که غافل شدید گویا که در مجلس اصلا حاضر نیست که قول کلیسهی ایا فلان مانند این سخنت که به شخص صاحی میگویی ای فلاند اونه شاهی که در کتب فق خیلی کار مرداره نیک کسی که کس زیاد فراموش میکنه. صحف میکنه باله فراموش کار صحوان این دیگه در قسمت فق خیلی کار سوچ ده صحف حتی مش میگن. و قد تخرج الفاظ النداء معناها الاصلي لمعان اخرى تفهم بالقرائن و گاهی الفاظ النداء از معنای اصلیشون به معانی دیگه‌ای خارج میشوند که از قرائن فهمیده بشه یک یکی از معانی اغراء است یکی از معانی چی است اغراء یعنی تحریک کردن بران گیفتن نحو قولک لمن اقبل يتظلل ما ند کسی که روی کرده دادخواهی میکنه چیکار میکنه مظلمت هاش رو مطرح میکنه تو بهش میگی یا مظلو اینجا نداشت نمیزنی بلکه تشویقش میکنی که مظلمت رو بیان کنه و زجر یکی از معناش زجره مانند بازداشتن و ملامت کردن آ فعادی متلمتابو متابو ما تسخو و شیبو فوق رأسی علم ای قلب من ای دل من متل متابو توبه کی هست که توبه میکنی علم ما تسخو آیا از مسی به حوش نمی آی؟ آیا هنوز از مسی بهوش حوش این این حقه همزه استفخامیه یه لما همون لمای نافی استفخامیه هست لمایی که نفی میکنه تا زمان حاضر تصحو ببینید تصحو چه هست سحا یسحو در از سحا ناقصه چون اینجا مجزومه شده تسحو وافته شده حس شده الان تسحو به صحف نمی آیی آیا به حوش نمی آیی وشه فوق رأسی با در حالی که یا با وجودی که پیری بر سرم فرارسیده است فرود آمده است ای دل من که توبه میکنی؟ آیا از مستی هنوز به هوش آیی؟ با آنکه پیری بر سرم آمده است؟ این علمه فعل ماضیه اما اون علمه قبلی چه است؟ دو دوت کلمه است حمزه و لما حمزه و چه؟ لما و التحس سه و التحیوری و التمجر سرگردانی و تزجر انزجار دلتنگی من ایا من منازل من این سلما کی؟ ای منزل های سلما سلمه کجاست؟ و یک فی الاطلال و المطایا و و این این این معنی بیشتر در رابطه با چی کار داره اطلال اطلال چی میگند؟ همون باقی مانده های آثار خرابه ها و التحصوری و توجه معنی دیگه شایست؟ بله افسوس خوردن و دردمندی نمودن مانند آیا قبر معنی کیف واریت جوده وقد قد کان منه البر و البحر مطرح ای قبر مان ای قبر من؟ چگونه جود او را واریت و در حالی که خشکیو و از بخشش او پر هستن لبریز هستن سرشار هستند. یکی از معانی دیگرش تذکر هست یکی از معانی دیگرش چه هست؟ تذکر هست یعنی یادآوری کردن ایا منزل سلم سلامون علیکم حل الازمن اللاتی مدین الرواجع ای دو منزل سلما سلام بر شما باد آیا روزگاری که گذشته است باز میگردد؟ این هم بیچار دردمند آیا منزل سلم سلامون علیکم یاره خونه چه کار میکنه سلام میده میگه آی اون هایی که گذشتند و تو روزگار خوبی داشته باز میگردند و غیر طلبی خب اونجا گفته بود که انشای طلبی داشتیم و انشای غیر طلبی الان برای غیر طلبی چیزی نمونده اینو تمام بيكونين، و غير التلبي يكونوا بالتعجب والقسم وسيغ الأدو أقوده. إنشاء غير تلبي بتعجب وقسم وسيغ هاي أقوده. أسمان عند بعتو سيغ أقوده اشترتو كسيغ أقوده. ويكونوا بالغير ذلك وعبي تشيز هاي ديار. وأنواع الإنشاء غير التلبي ليست من مباحث علم المعاني. أنواع إنشاء غير تلبي أز بحث علم المعاني ميستند. فلذا ضربنا صفح عنها بإن خاطر بأنها نتفرغتين. در مورتن بحث نكردين. ضربنا صفح